سرخ. مارکو اسم پسر بد بود که توی کلبه کوچیکی در خارج شهر زندگی می کرد. اون از مردم خوشش نمی و زیاد به شهر نمی رف. از اونجایی که هیچ دوستی نداشت تنهایی خیلی آزارش میداد. به همین علت یه روز تصمیم گرفت که همسری برای خودش انتخاب کنه و با اون ازدواج کنه. اون هر روز به شهر میرفت تا شاید بتونه همسر مورد علاقش رو پیدا کنه. اما به خاطر اینکه خیلی بد اخلاق بود و کسی توی شهر از اون خوشش نمیومد، در این کار موفق نبود و هر روز غروب ناامید و غمگین به خونه برمی گشت. بعد از چند ماه تصمیم گرفت به سرزمین های دیگه سفر کنه. شاید میتونست همسرش رو در اون سرزمین ها پیدا کنه و خانواده ای تشکیل بده. بنابراین بار سفر رو بست و راهی سرزمین های دور شد. به هر شهری که میرسید سعی میکرد با مردم اونجا دوست بشه ولی کسی با غریبه که دوست نمیشد. مارکو همینطور سفرش رو ادامه داد تا اینکه همه پولاش خرچ کرد. جایی رو نداشت و پولی هم براش باقی نمونده بود که به خونه برگرده. شب شده بود و مارکو همینطور ناامید در گوشه ای نشسته بود. دنبال راه چاره بود که ناگهان پیرمرد مرد ریش سفیدی جلوش ظاهر شد. پیرمرد مرد با توجه به مارکو نگاهی انداخت و ازش پرسید چرا اینجا نشستی جوون؟ قبلا تو رو تو این شهر ندیدم از کجا به شهر ما اومدی مارکو به سرعت بلند شد سلام کرد و گفت من از سرزمین های اون طرف به کوه سفید میام در این شهر جایی رو ندارم که برم و همه پولم هم تموم شده پیر پیرمرد نجار مهربونی بود و دلش برای مارکو سوخت بنابراین اون رو با خودش به خونه برد و بعد از اینکه به مارکو شام مفصلی داد از اون دلیل اومدن به شهرشون رو پرسید مارکوی غمگین هم کل ماجرای زندگیش رو برای اون تعریف کرد. پیر مرد بعد از کمی فکر کردن گفت آیا تا به حال از خودت پرسیدی چرا هیچ دوستی نداری؟ اگه نتونی با مردم دوست بشی، مطمئن باش هیچکس هم حاضر نمیشه با تو ازدواج کنه. اول قول بده که از این به بعد با مردم به خوبی رفتار کنی و بد رو کنار بذاری. بعد شاید بتونم کاری برات بکنم. مارکو که خودشم میدونست خیلی بد بداخلاق بوده و میخواست که روش زندگیش رو عوض کنه به پیرمرد قول داد که از این به بعد با همه خوش رفتار باشه. بعد پیرمرد لبخند زد و گفت: حالا فکر کنم بتونم تو را از تنها و غمگین بودن نجات بدم. اما ممکنه برات خطرناک باشه. باید خیلی مواظب باشی. آیا حاضری خطرش رو قبول کنی؟ مارکو هم که برای ادامه زندگی هیچ امید دیگه ای نداشت، پیشنهاد پیرمرد رو قبول کرد. پیرمرد گفت حالا که اینطوره، فردا صبح زود باید با هم به جایی بریم. بنابراین امشب رو خوب استراحت کن. صبح روز بعد مارکو به همراه پیرمرد مهربون از شهر خارج شدند و بعد از رد شدن از روستاها به دریاچه بزرگی رسیدند داخل دریاچه یک جزیره کوچیک وجود داشت و هیچ خونه اونجا دیده نمیشد. به بجز یه درخت بزرگ که در وسط جزیره کوچیک قرار داشت زیر درخت چیز تلای رنگی می درخشید و پایین از اون سخراهای زیادی به شکل انسان دیده می شودن. مارکو با کنجکاوی پرسید اینجا کجاست چرا من رو به اینجا آوردی چه کسی توی اون جزیره زندگی میکنه اون چیزی که زیر اون درخت میدرخشه سنگ ها چرا شبیه به انسانند همینطور که داشت سؤال میپرسید پیرمرد حرفش رو قطع کرد و گفت آرون باش جواب همه سؤالاتت رو میدم به دقت گوش بده اونجا جزیره متروکه است و سال‌هاست که کسی جرأت نکرده به اونجا بره. اون چیز طلایی رنگی که می‌بینی، پیرزن جادوگریه که موهاش تلایی و خیلی خطرناکه. و هر کسی رو که بخواد بهش نزدیک بشه، به سنگ تبدیل میکنه. اون سنگایی هم که شبیه انسانن، در حقیقت سنگ نیستند بلکه آدمایی هستند که جادوگر اونها را تبدیل به سنگ کرده مارکو با ترس پرسید خب اون آدما چرا به اون نزدیک شدن چرا اون رو به حال خودش نکردن؟ نکردند مرد به جزیره نگاهی کرد و گفت اون پیرزن صاحب یک ققنوس سرخ جادوییه هر کس بتونه اون پرنده رو لمس کنه همه آرزوهاش برآورده میشن. همه اون آدماییم هم که به سنگ تبدیل شدن به خاطر اون به جادوگر نزدیک شدن. اما تو برای این کار اول باید جادوگر رو فریب بدی. مارکو با کنجکاوی هیجان پرسید چطور؟ چطور باید اون رو فریب بدم؟ بعد پیرمرد به مارکو نگاهی کرد و گفت قبل از اینکه جادوگر تو رو ببینه یه تارمو مو ازش بکن خیلی مراقب باش اگر قبل از اینکه این, این کار رو انجام بدی به تو نگاه کنه به سنگ تبدیل می شود دیگه کسی نمیتونه نجاتت بده اما اگر بتونی قبل از اینکه چشمش بهت بیفته یه تارمو از موهای طلاییش رو بکنی، دیگه نمیتونه تو رو تبدیل به سنگ کنه برای پس گرفتن تارموی خودش بهت اجازه میده به ققنوس سرخ دست بزنی و اون وقت ققنوس هر آرزویی که داشته باشی رو برآورده میکنه بعد مقداری دونه هم به مارکو داد و رفت به مارکو گفت امیدوارم که بتونی از دونه ها به زیرکی استفاده کنی مارکو کمی صبر کرد تا هوا تاریک تر بشه. در همین حال با خودش کمی فکر کرد و نقشهی کشید. وقتی آفتاب کاملا غروب کرد و ستاره ها کم کم پیداشون شد سوار قایق کوچیکی شد و جزیره را دور زد و به آهستگی به جزیره نزدیک شد. برای اینکه جادوگر اون رو نبینه از پشت درخت به سمت اون رفت. گوغنوز توی دستای جادوگر نشسته بود و جادوگر متلایی داشت اون رو نوازش میکرد. مارکو مقداری از دونه هایی که پیرمرد بهش داده بود رو از جیب شلوارش در آورد و برای گوغنوز به کمی اون طرفتر پرتاب کرد. همین که پرنده پرید تا دونه ها رو از روی زمین برداره، حواظ جادوگر به قغنوس و دونه ها پرد شد. مارکو هم از این فرصت استفاده کرد و با سرعت از پشت به جادوگر نزدیک شد و یه تارموی بلند طلایی از موهاش کند. پیرزن زن جیغی کشید و با عصبانیت به مارکو نگاه کرد. وقتی تارمو را توی دست مارکو دید، زانو زد و با گریه و زاری ازش خواست تارموی اون را پس بده، در عوض اون هم اجازه میده مارکو به ققنوس دست بزنه تا هر آرزویی که داره برآورده بشه. مارکو کمی فکر کرد بعد پرنده قرمز رنگ زیبا رو گرفت تارمو رو به پیرزن داد. قغنوس رو با دستهاش بلند کرد و آرزو کرد همه کسایی که تبدیل به سنگ شدن دوباره تبدیل به آدمهایی شاد بشن. بعد ققنوس رو پوسید و دوباره آرزو کرد که اون پرنده تبدیل به همسر مورد علاقش بشه. بلافاصله فاصله آرزوهای مارکو برآورده شدند و همه سنگ ها تبدیل به آدم شدند. بعد ققنوس با نور زیادی درخشید و آتیش گرفت و از بین خاکستر اون آتیش زن زیبایی بیرون اومد. مارکو از خوشحالی فریاد کشید و خدا رو شکر کرد. مارکو زن زیبا با هم به سمت قایق رفتند و بعد از اینکه با خشکی رسیدن قایق را برای بقیه فرستادن تا اونها هم از جزیره متروکه نجات پیدا کنند بعد مارکو به همراه همسر مورد علاقش پیش پیشพีرامید رفتند و روز بعد هم با هم ازدواج کردند. بعد از اون مارکو نجاری را از پیرمرد یاد گرفت و برای پیرمرد حسابی کار کرد تا اینکه تبدیل به نجار ماهری شد. بعد با کمک پیرمرد مرد خونه ای از چوب های خوش رنگ و زیبا توی همون شر ساخت و در کنار همسرش خانواده شاد و بزرگ درست کردن. مارکو دیگه تبدیل به آدم خوش شده بود و همه مردمون رو دوست داشتن. او شغلش رو هم خیلی دوست داشت و مردم شهربری ساختن خونه پیش اون می اومدن. کسایی که مارکو اونها رو نجات داده بود هم دوستای خیلی خوبی برای اون شده بودن. مارکو سالیان درازی با شادی و خوشحالی کنار خانواده و فرزندانش زندگی کرد و به شادی دست پیدا کرد. اگر شما به جای مارکو قوکنوس رو می چه آرزوی می کردید؟